مولانا الیاس رحمت الله تعالی فرمودن اگر نگاه به بدی های هم بکنی مستخوبی های هم محروم نیشی اشتونداره جرسات علمی فکری و اصلاحی سال 1400 افتتاحی جرسات باسخانرانی مولانا بهزاد فیخی اجرا و ازاب نرخز ادوم قرآنی سیران بر مقامی پایین تر از اللہ و رسول همه ما خطاکاری شمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم <تضحك> الحمد لله فضل وكرم الهي الله الهي بربنده شد كباري ديگار در خدمة شما اساتید با و بزرگوارم با علماء و فعانیل حرصه ۱۰۰ اصلاح و شما مردم عزیز مردم دیندوست مردم آقای این خطه و بلاخر سوران نزیز توفیقی شد مجدداً خدمت شما ازام برسه همه شهر سوران رو به عنوان الگو هست و عضبه هست در فعالیتهای فرهنگی و دینی و در پلاش و تکابو هستند برای اینکه نه تنها برای خود بلکه برای همه هماسران خودهشد در اقصال نقاط ایران اسلامی و حتی خارج کشور بدونن ترویج و اشاعت فرهنگ قرانی بدن بدونن حیام قرآن رو جمعانی کند محلوه سوران رو همه با این مشن این مرکز قرآنی اینجا الحمدلله راه در پیش داره ولی قدمهایی هایی هم که برداشته شده قدم های روسیان ها حرزشوانی و شکر بخواست دو چیز لازمه حد تعالی و ترقیب و این که انسان نگاه بر قدم های پیش رو بکنه و نگاه بر اون اهداف عالی بکنه نگاه بر اون آرمان های بزرگ خودش بکنه و به درگاه الله تعالی اظهار عجز و ناتوانی و درماندگی خودش رو بکنه در غم ما روزها بیگاه شد مولانا میگه روزها با سوزها همراه شد روز مؤمن باید پر سوز باشه روز مؤمن باید چطور شب بشه مولانا تو این بیت اینو بیان میکنه در قم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد ممن با یه قم زندگی میکنه قم مؤمن فراتر از اون قمهای صافل و قمهای دنی و کوچکیه که امروز تو دنیا وجود داره قم مؤمن قم قارونی نیست قم مؤمن قم فرعونی نیست تو قم مؤمن قم مادیت تو قم مؤمن قم تفرعون و برتری جویی نیست قم مؤمن قم جاه و زرندوزی نیست قم مؤمن قمی از جنس قم لوط قمی در مسیر فساد و فحشا قمی در مسیر بی نیست قم مؤمن قمی مثل قم قوم عاد و ثمود که فریاد بلند کنن از ما قوی تر کسی نیست و در دل کوهها برای خودشون آپارتمان ها درست بکنن این قم مؤمن نیست قم مؤمن رو یه جای دیگه مولانا بیان میکنه میگه بر دل عاقل هزاران غم بود گر زباق دل خلالی کم بود قمم اومن قم دلشه قمم اومن اینه که تو این دل آرمان این دل آرزوی این دل محبوب این دل مطلوب این دل مقصود این دل اون نکنه یک ذره در او کمی بیاد اگر یک ذره در اون آرمان در اون فکر بلند در اون چیزی که برای خودش محبوب مطلوب مقصود معرفی کرده ذره خلل احساس بکنه هزاران غم بر او مستولی میشه او اورو بزرگترین مصیبت برای خودش میفهمه نبی ما دعا میکرد اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا برای مؤمن بالاترین مصیبت مصیبت دینیه بالاترین غم غم دله به تعبیر حضرت مولانا عبدالعزیز یکی ثروتش تو جیبشه و غمش از کم شدن این ثروت جیبشه یکی ثروتش تو بانکه و غمش از کم شدن سرمایه بانکیشه اما یکی سرمایهش تو دلشه و غمش کم شدن این سرمایه یه دله اینو نمیتونه تحمل کنه این رو بالاترین سرمایه برای خودش میفهمه مولانا به ما داره میگه که روزهای ما باید پر باشه از این غم در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روز, روز مؤمن باید پر سوز باشه روز مؤمن باید پر از غم باشه اما غمی از جنس غم ابوبکر صدیق غمی از جنس غم خیر القرون غمی از جنس قمی که در سینه های بیت و آل رسول وجود داشت قمی از جنس قمهایی که در سینه صحابه و صحابیات وجود داشت قمی از جنس غمی که در سینه انبیا و اولیاء وجود داشت اون قم و یعنی قمهای دیگه قمهای بچگانه است خلق اطفالند. جز مست خدا نیست بالغ، جز رهیده از هوا. هر که برای هرچی داره قم میخوره نشان اینه که به بلوغ معنوی نرسیده. و این غمش یه قم بسیار بیمعنوی بی اصاسیه. چیزایی که امروز ما تو دنیا اسمشون رو غم گذاشتیم اینا غم نیست. تمام این غمهایی که امروز ما به عنوان یه مصیبت بزرگ و یه غم جانکاه او رو میشناسیم، و تمام فضای فکری ما و تمام استعداد و توان ما رو تحت شعای خودش قرار داده درگیر این غمیم همین غم رو امروز بنویس تو یک صندوقچه بذار ده سال بعد همین صندوقچه رو باز کن به این غم میخندی اینا غم نیست تمام غم هایی که این جامعه برای خودش غم تعریف کرده نتیجه خودخواهی ها و برتری جوی های خود ماست قم نام من قم نان من قم من کذایی و دروغی من قمی که من برای خودم بدون اصلاح و خودسازی اسم او رو غم گذاشتم اما قم نیست. و فراموش کردیم اون غم بزرگ رو که علام اقبال میگه ای توهی از شوق و ذوق و سوز و درد میشناسی اصر ما با ما چه کرد؟ اصر ما ما را زما بیگانه کرد از جمال مصطفی بیگانه کرد این اصر با همه و صنعتش با همه فناوریش، با همه اختراع اکتشافش، با همه سرعت و لذت اینا شعار این اصره سرعت بیشتر لذت بیشتر شده آرمان و خدای این عصر بوت مادیت سرعت لذت این خداست این معبوده این مطلوبه و برای رسیدن به این بشر داره هر غمی رو تحمل میکنه هر فرسایش روحی و روانی رو داره تحمل میکنه این غمهای صافله که ما رو از اون غمهای بزرگ دور کرده. به خدا دل هر انسان برابر با همون غمیه که تو دلشه یه بچه غمش کچکه چون تو دلش غمهای کچک داره پرورش میده یه بچه دل به یه بادبادک داده بادبادک میترکه دل او هم میترکه بغضه او هم میترکه برای یه چیزی داره گریه میکنه که من بزرگ نگاه میکنم میگم این یعنی چه؟ این چه قمیه این این قم نیست اصلا همونطور که غم این بچه برای یک انسان بالغ بی معناست تمام غم که این جامعه برای خودشون معرفی کردن در نظر انبیا و اولیا غم بسیار خام و بی معناست اینا غم نیست غمی که انسان رو به تعالی نرسونه به ترقی نرسونه غمی که انسان رو به اون شکوفایی و رشد و بالندگی نرسونه غمی که انسان رو به پله های سعادت و کامیابی نرسونه اصلا اون غم غم نیست از ان نظر انبیاء و اولیا اون غم شایسته این که اسم غم رو روش بذاری نیست و اگر ما خودمون رو به غم بزرگ و آرمانهایی در جهت اون آرمان عظیم آماده نکنیم غم های کوچک کوچک ما را از پا در میاره چال چوله های زمین به گفته یک حکیمی پستی بلندی های زمین برای یک خزنده بسیار سخته چون خزنده است از هر جا میره بالا تا میاد با این کلی اذیت میشه چاله چوله ها و پستی بلندی های این زمین برای یک چارپا سخته ولی از به اندازه که برای خزنده سخته اینقدر سخت نیست اما چالچوله ها و پستی و بلندی ها برای پرنده جز یک جاذبه و یک جلوه قشنگ هیچی دیگه نیست او فقط اینا رو میبینه و لذت میبره هیچ کدوم این پستی و بلندی ها فراز و نشیب ها او رو خسته نمی بلکه لذت می از اینها مثال مومن اینطوریه مؤمن بر فراز همه قمه ها داره پر می بلند آشیانه بلند همته و نگاهش به این غم های سافل سافل و کوچک کوچک دنیا یک نگاه بسیار سطحی و گذراست اصلا اینا رو غم نمیفهمه. امروز غمی که بشریت اسمشو غم گذاشتن غم خوراق، غم پوشاق، غم مسکن این نهایت سقف آرزوها و حمت یک حیوانه یک حیوان تمام دقدقش، همش، غمش، فکرش، ذکرش اینه که چی بخورم؟ فکر به تعبیر مولانا فکر اوخور دارد فکر آخر ندارد تمام غمهاش خلاصه میشه در شکم و مقتضیات شکم تمام غمه یک حیوان خلاصه میشه در شهوت شکم و شهوت فرج اصلا به چیزی بالاتر از این نمیتونه فکر بکنه حمتش پسته استعداد و توانش در این حد بیشتر نیست و اون انسانی که با این همت زندگی میکنه اگر چه اسم انسان رو یدک میکشه اما انسان نیست یاکلون و یتمتؤون کما تاکل الانام فقط خرد و فقط تنوع و تناسایی راحت تلبی چیزی بالاتر از این نمیتونه فکر کنه اولای کل لعنه بله آن هم عدل اینها حیوانان و از حیوان پسترند کسایی که استعداد دارن توان دارن خدا قابلیت هایی در اونها گذاشته اما به این قابلیت ها پشت میکنن و با این هممت های پست دارن زندگی میکنن اینا از حیوان هم پایین ترند چون حیوان نداره این استعداد رو این داره و از این استعداد به جا استفاده نمیکنه شکوفاش نمیکنه تبلورش نمیده انسان آدمیت لحم و شحم و پوست نیست آدمیت جز رضای دوست نیست اصلا آدمیت به این کالبد بشری نمیگن که به این اعضا و جواره خالی آدمیت نمیگن آدمیت یه معنای بسیار وسیع داره مولانا داره به ما معرفی میکنه مؤمن اولا باید با یه فکری و با یه آرمانی و با یه آرزوی زندگی کنه در غم ما روزها بیگاه شد روزهای ما به شب رسید روز ما به اتمام رسید با یه غمی روزها با سوزها همراه شد این روز ما با سوز دل همراه شد مؤمن وقتی نگاه میکنه الله این الدین و انا حی با این سوز با این درد قم و سوز مؤمن چیه؟ نیمه های شب بلند میشه مثل حضرت علی مرتضا ریش خودش رو میگیره میگه آه من قلت الزاد و بعد سفر خدای علی با این توشه کم و این راه طولانی چه بکند؟ این غم مؤمنه قم زنده شدن دین قم اعلای کلمت الله قم راضی شدن الله قم سعادت آخرت قم لقای الله قم دیدار الله قم هم کلامی الله اینها قم مؤمنه و این قم هست که با اسمش مؤمن همه قم های دیگر را کوچک ببینه بی معنا ببینه و اصلا اونها رو اینقدر ارزش ببینه که حتی فکر خودش رو به اونها مشغول نکنه اللهم لا تجعل دنیا اکبر همینا ولا مبلغ علمینا ولا غای ترغبتینا خدای دنیا هم و غم و منتحای فکر و آرزوی ما نشه پست دنیا مقام دنیا شحوت دنیا نام دنیا منصب دنیا خدای اینها هم فکر و آرزوی ما نشه ما برای اینا زندگی نکنیم تو این بیت مولانا غم مؤمن رو معرفی میکنه سوز مؤمن رو معرفی میکنه و این که مؤمن چه همت بلندی و چه همت عالی باید داشته باشه اما تو بیت دوم میترسه که مخاطبش گرفتار یعص و ناامیدی ایستایی و رکود بشه جمود بشه تعطل بشه تنبلی بشه و بر اون چه که داره شکر نکنه لذا تو بیت دوم باز دعوت به شکر میده تو بیت اول علاج و میکنه غم معرفی میکنه مسیر نشون میده تو بیت دوم علاج و میکنه میگه تو بیت دوم ببخشید علاج ناامیدی رو میکنه میگه چه روزها گرف گور و باک نیست تو بیمان ای آن که چون تو پاک نیست همه این روزا داره میره به بره شکال نداره مهم اینه که من ذره از محبت الله تعالی ذره از عشق و سوز الله تعالی تو سینه من هست تو بمان این که چون تو پاک نیست ای عشق ای محبت ای آرمان ای منتهای فکر آرزوی من کمی اما بر کم تو من شکر می کنم کم تو را هم من بزرگ می بینم همینی که هست بر همین هم شکر می کنم. الله شکرت. عزیزان اولا اینکه که نگاه به گامهای جلو کنیم و غم سوز خود رو مرور کنیم و نگاه بر قدمهای گذشته بکنیم و بر همینی که هست الله رو شکر کنیم ناشکری نیاد دوم عجب غرور نیاد تو مسیر اینها رحزنن برای یک دایی برای یک مصلح هم عجب و غرور و خودبینی بر قدم هایی که برداشته بده هم ناشکری و ناسپاسی نسبت به اون چیزی که الله بهش توفیق داده. از طرف شاکر باشیم از طرفی قدردان نعمت الله تعالی باشیم تا همین حدم الله ما را رسونده فضل الله بوده شکرتو الله بر این نعمت مال من راه خوبی خرف شد وقت من در مسیر خوبی خرج شد جامعه بر من اعتماد کرد و از من کار دین داره گرفته میشه الله شکر تو بر همین شکر بکنیم اما بر همین قانع نشی همین باعث عجب نشه باعث قرور نشه عزیزان عنوانی که برای این جلسه گذاشتن امت اسلام جایگاه و رسالتش ما اممز چشم امید بشریت به تعبیر علامه ندوی رحمت الله تعالی ماذا خسر العالم بین حطات المسلمین ما اگر نشستیم ما اگر نکردیم ما اگر پیوندی با هم نداشتیم ما اگر مقصد و هدف خودمون رو نشناختیم تنها خودمون زرر نمی تمام بشریت زرر میکنه. خلبان اگر در حین خلبانی خوابید و غفلت کرد خودش ضرر نمیکنه کل کسانی که بر اون استعداد و توان او اعتماد کردن همه ضرر میکنه یک ملبان کشتی اگر مسئولیت خودش رو درست انجام نداد خودش تنها قارگانه میشه خودش تنها نابود نمیشه تمام ساکنان یک کشتی رو نابود میکنه یک رانده ی اتوبوس اگر غفلت کرد و درست رارندگی نکرد تنها خودش zarar نمی کنه کل کسانی که بر او اعتماد کردند و بر آرندگی او اعتماد کردند به تبحر او اعتماد کردند همه اونها رو از بین برده این امت اگر خوابید اگر این امت غفلت کرد و این امت اگر تو پیوندای اجتماعی که خودشون با خودشون بد داشته باشن تو اخوته اسلامی که خودشون با خودشون داشته باشن، اگر تو این موفق نبودن یه مدل موفق از یک جامعه اسلامی رو شکل ندادند تنها به خودشون خیانت نکردند به همه بشریت خیانت کرد. سستی این امت و ضعف این امت و این که این امت نتونه جایگاه و رسالت درست خودش رو که معلم بشریت هست درست ترک بکنه باعث میشه کل بشریت سرار بکنه قبل از هر چیز نبی ما در مدینه منوره آمد پیوند مواخات ایجاد کرد مهاجر انصاری رو کنار همدیگر قرار داد عبدالرحمن بنعوف فقیره رسول رو صلی اللہ او رو با یک انصاری پیوند برادری برقرار کرده او میگه بیا نیمی از مال خودم رو میدم من دو تا همسر دارم یکی رو طلاق میدم بعد از گذشتن ادت تو با اون ازدواج کن الرحمن ببینید سخاوت رو ببینید ایثار رو ببینید اکرام رو از طرف انصاری و ببینید عزت نفس رو و ببینید تعفف رو و پاک دامنی رو با وجود فقر و نداشتن حرص و طمع رو با وجود فقر از طرف یک مهاجر حضرت عبد رحمان بن عوف میگه برادرم من احتیاج ندارم من این فرد تاجر و بازرگانم فقط مسیر و بازار رو به من نشون بده این جامعه چقدر پیوند عمیقی با خودشون پیدا کردن که حتی دو تا برادر نسبین رو با هم نداره هر کی وارد مد... مدینه میشد با تمام وجود اذعان میکرد اگر فردوس بر روی زمین است همین است و همین است و همین است وارد مدینه منوره هر کی شد یک مدل بسیار موفق و یک مدل بسیار زیبا و قشنگ رو از حمزیستی اسلامی و معاشرت ناب اسلامی رو میتونست مشاهده بکنه جامعه ای که توش همه موازین اخلاقی و همه چار چوب معاشرتی داره رعایت میشه بهشت آنجاست که آزاری نباشد کسی را با کسی کاری نباشد وارد مدینه منوره میشد میدید اینجا کسی با کسی کار نداره اینجا آزار نیست اینجا عذل علی المؤمنینن اینا همه در مقابل هم فروتن هر که عیبای خودش رو میبینه هر که دره گرفته بر پاهای خودش میکوبه هر که محاسبه نفس میکنه هر که بر خطاهای خودش گریه میکنه و همه نگاه به فضیلتهای هم دیگر میکنه هر یکی نگاه بر خوبی دیگری میکنه هر یکی دیگری رو از خودش برتر و بهتر میدونه و هر کس تو این جامعه نگاهش بر عیوب خودش اگر یک فاسق از جذب های خبری داره سوء استفاده میکنه میخواد فضای این جامعه رو متشنج کنه فضای از غیبت فضای از تهمت فضای از افترا فضای از چینه، فضای از بغض و نفرت رو تو این جامعه رواج بده اگر یک نمام و سخنچین میخواد بیاد و این اقشار جامعه رو به جون همدیگر بندازه اگر یک فاسق میخواد خبره خبرسازی و سازی کنه تا افراد این جامعه رو در مقابل هم قرار بده جامعه ای که به خرد جمعی رسیده جامعه ای که هوشیاره، جامعه ای که میدونه فساق این جامعه بیکار ننشستن اذا جا فاسق به نبین قبل از هر اقدام عملی تحقیق میکنن این خبر برای من آورده سوره حجرات سوره اخلاقه چند آیه ای اول در رابطه با اخلاق تعامل با رسول الله اخلاق تعامل با پیشوایان و مقتدایان جامعه استدار رو بلند نکنیم از اونا جلوتر راه نریم اونها رو با جایگاه اونها تکریم کنیم این آیات اوله جایگاه نوی و وارسان نوی جایگاه مقتدایان جامعه تو چند آیه اول مشخص میشه بعد بلا فاصله الله تعالی اولین بحرانی که جامعه اسلامی رو نابود میکنه اگر جامعه اسلامی پیوند برادری درستی نداشته باشه اگر نتونه این جامعه انما المؤمنون اخوه ایمان و اخووت رو کنار هم خدا میاره ایمان و اخووت میاره مؤمن نیست کسی که با همسایش رفتار بد داره مؤمن نیست کسی که اخلاق نداره اصلا نشانه یک ایمان کامل اثر یک ایمان کامل تو اخلاق او ظهور پیدا میکنه کسی که با همسایش خوبی نیست به ایمان خودش شک بکنه که این ایمان ناقصه ایمان مطلوبی نیست کسی که احب لله ابقى لله اعطى لله منع لله فقد استكمل الايمان نشانه کمال ایمان حب خب في الله بغض في الله اگر میبینی محبت رنگ خدایی نداره ادابت رنگ خدایی نداره به خودت شک کن ایمان انو تکمیل نیست نشانه های ایمان آثار یک ایمان کامل این هاست. یک یک ای که هنوز آثار ایمان آثار یک مسلم کامل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ای که توش آثار آثار ایزا و عزیته هیچ از دست یکی دیگه و از زبان یکی دیگه آسوده نیست کی فضا این جامعه رو متشنج کرده یک فاسق تنها یک فاسق نه یک فاسق خبرچین یک فاسقی که اهل غیبته یک فاسقی که اهل بدگویه او تنها فضا این جامعه رو متشنج نکرده یکی فاسق خبرچین دو یک مؤمن سادلویی که بدون تحقیق و بررسی هرچی رو باور میکنه بدون تحقیق و بررسی در مقابل هر شنیدهی واکنش نشون میده بدون تحقیق و بررسی فورا وارد عمل میشه تصمیم اجولانه میگیره این دوتا کنار هم دیگر شد فضایی از کین توزی اداوت بغض و نفرت برای اینا میاد و اگر این جامعه به این اخوت نرسید معاشره اسلامی رو زنده نکرد تکم فل ارز فساد کبیر الفاظی که میاد اون موقع تو این جامعه اگر این اخوت نیاد فساد کبیر به وجود میاد خود این جامعه فاسد نمیشه یک دنیا رو فاسد میکنه چون اینایی که قرار بودن دنیا رو خالی از فساد کنن خودشون به فساد معاشرت گرفتارن خودشون به خیانت خودشون به تهمت، خودشون به افترا خودشون به تجسس خودشون به تحسس خودشون به لقب دادن الفاظ بد به همدیگر متهم کردن همدیگر خودشون گرفتارن خودشون جامعه خودشون رو تبدیل به جهنم کردن اینا میتونن دنیا رو پر از خوبی کنن قطعاً نمی نمیتونن اولین چیزی که الله تعالی بعد از جایگاه مقتدایان جامعه بیان میکنه اینه پیام قرآنی اینه که برای این که آرامش رو به جامعه برگردونید، فضای جامعه رو یه فضای امن کنید، نمونه ای از بهشت کنید، آزار را از جامعه بردارید. معاشره اسلامی برای همین آمده که آزار از جامعه برداشته بشه. بهشت آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. همه به فکر عدای حقوق همدیگر باشد متاسفانه امروز به جای اینکه دنبال ادای حقوق همدیگر باشیم دنبال مطالبه ی حقوق همدیگر هستیم همسایه به جای اینکه بگه من نسبت به همسایه و چه احترام و ادبی رو رعایت کنم با خودش فکر می‌کنه همسایه من چه حقوقی از من تلف کرده دو تا برادر بودن اینا همیشه با همدیگر در حال جنگ بودن یکی بزرگتر یکی کوچکتر یکی اومد اینا رو نصیحت بکنه گفت شما دو تا برادرید و پیام معاشرتی اسلام همینه که شما با همدیگر خوب باشید بزرگتر احترام کوچکتر، کوچکتر، بزرگتر شفقت به کوچکتر، کوچکتر احترام بزرگتر اینا پیام اخلاقی اسلام ماست اسلام تنها برای نماز من حد و مرس نکرده برای حج من تنها حد و مرس تعین نکرده برای رمزان من تنها حد و مرس نکرده برای معاشرتی من حد و مرس کرده با این زبان چی بگم چی نگم با این زبان مواظب باشید اولین چیزی که فضای جامعه رو آلوده میکنه این زبانه جرمه سغیر و جرمه کبیر خیلی کوچکه اما تو نیام لسانه و شفاتاین این نیامه خیلی کوچکه اما این همه سرباز پیاده نظام دندان رو خدا در محاصر قرار داده که اگر این دراز شد اینا گازش میگیره نگو یک حرف گاهی از یکی بلند میشه توی یک جامعه تعنی تشنی چگامی به گفته اجتماعه فضای جامعه آلوده شد فضای از غیبت، فضای از تهمت، فضای از بدبینی، فضای سوء زن فضای از دشمنی و نفرت یک نفر جمله بیهوده گفت گفت.فتنه ها بلند کرد. تا ما نتونیم این مدینه فاضله این جامعه آرمانی رو درست کنیم جلوی فساد کبیری که عالم را گرفته نمیتونیم بگیریم. تا ما نتونیم رحما و بینهم باشیم اشدا على الكفار نمیتونیم بشیم تا ما نتونیم عدل علی المؤمنین باشیم در مقابل هم فروتن باشیم نمیتونیم عز على الکافرین باشیم تا وقتی ما برادر مسلمان خودمون رو دشمن میفهمیم و صبح تا شب درگیر او هستیم اسرائیل رو دیگه دشمن نمیفهمیم فراموش میکنیم دشمن کیه تمام توان ما و استعداد ما صرف میشه برای اینکه یک مؤمن و مسلمان دیگر رو بیابرو کنیم یک کلیپ بی زمانی پخش شده بود دوتا آهو با همدیگر درگیر بودن با همدیگر می شیر شیری آمد هر دو تا رو گرفت گوه زیر کلیپ جمله قشنگی نوشته بود نوشته بود این فضا رو هر ای برای خودش درست کرد و هر ای که درگیر اختلافات داخلی و درگیر چین توزیهای فردی و قومی و ای شد دشمن بزرگتر رو مجال میده تا اونا رو تکه تکه بکنه این جامعه وقتی که درگیر مسائل جزئی و هاشیعی تو خودش هست در مقابل هر پیام فاسق واکنش نشون میده تحقیق نمیکنه و سری واکنش نشون میده ای که خودش نتونست اسلام رو تو خودش زنده بکنه ای که نتونست هنوز شمشیرهایی که به خون هم آلوده هست به نیام کنه اون جامعه نمیتونه کسرا و قیصری فت کنه نبی ما قبل از همه تو مدینه منوره شمشیرهایی که چهل سال به خون هم دیگر آلوده بود شمشیرهای اوس و خضرج رو قبل از همه بنیام کرد نبی ما دشمنا رو دوست کرد نبی ما جامعه درست کرد که تو اون جامعه همه کل بنیان یشد و بعضه بعضا یک بنای مستحکم هر یکی دیگری رو پوشش میداد بلال حبشی در کنار صهیب رومی صهیب رومی در کنار عمر قریشی عمر قریشی در کنار بلال حبشی از اتیوپی همه یک دیوار شدند تمدن ساختن از قومیت های مختلف تمدن با شکوه اسلامی تو این جامعه عمر جلوی بلال حبشی دیروز قلام دیروز بلند میشه میگه قومو لسیده کن جلوی آقای خودتون بلند بشید تو این جامعه جامعه قشنگی درست شده که کسی با کسی کار نداره آذار نیست این جامعه همه به فکر ادای حقوق هم دیگرن. این این تا برادر با هم دیگر مشکل داشتن بزرگی آمد گفت که اسلام تنها نماز خوندن و نافل خوندن نیست قبل از همه فاسلحو بین اخوای اصلاح ما بین آهاد و توده جامعه از بهترین عبادت هاست اگر اصلاح ما بین صفوف مسلمان ها نیامد حالقه میاد حالق یه چیز برنده و میاد که می بره همه چیز رو بره همه خدمات دینی رو می بره همه حرمت ها رو میبره همه ی رو می بره همه ارزش ها رو می بره همه, همه قداست ها رو می بره همه خدمت های دینی رو قبل از همه اولی جان دفعشره موش کن بعد از آن در جمع گندم کوش کن گر نموشی دزد این انبان ماست خرمن اعمال چل ساله کجاست؟ اول چیزهایی که داره تو این جامعه میبره ارزش ارزشها و کرامتها رو شرافتها رو اول اینها اصلحو بین اخابی اصلاح بیارید آهاد جامعه توده جامعه مسئولا وقتی دیدن فضای جامعه ملتهب شد تحقیق کنن و بعد این جامعه رو به هم نزدیک کنن داو الامم درد همه امت ها رسول الله فرمود اختلافه دو ها و پنجشنبهها شنبه ها عفه الامومی و رحمت بی پایان الهی میباره جز بر مشرک و بر کسی که کینه در دل داره کینه شحنا دلهایی های که او کینه است اون رحمت عام اون عفه عمومی شامل حال اونها نمیشه جامعه ای بدون حقد و کینه بدون حسادت جامعه ای پر ایثار جامعه ای پر اکرام جامعه ای پر مودت جامعه ای پر رحمت جامعه ای پر اخوت فاصبحتم بنعمته اخوانا اخوان شدن برادر شدن نعمت الله بر این جامعه است. و جامعه ای که از اخوت دینی محرومه از نعمت بزرگ الله محرومه. جامعه ای که از اخوت دینی محرومه اون جامعه نمیتونه فساد رو از آلم برداره چون خودش گرفتار فساده. نمیتونه رسالت و جایگاه خودش رو حفظ کنه چون نتونسته برای خودش مفید باشه. برای دیگران چطور میخواد مفید باشه. به تو برادر گفتن که با هم خوب بشید. برادر بزرگتر گفت که این برادر که من از امت رسول الله نیست. یا الله! از امت رسول الله نیست. چطور گو در حدیث آمده که هر کسی به بزرگتر خودش احترام نگذار از امت من نیست. برادر کچکم احترام من رو نمیذاره از امت رسول الله نیست. خجاب. رفتن پیش برادر کوچک گفتن احترام این بزرگ رو بگیر. برادر بزرگ تو هست گفت او از امت رسول الله نیست یالله از امت رسول الله نیست که بله در حدیث آمده کسی که بر کوچکتر رحم و شفقت نکنه از امت رسول الله نیست او از امت رسول الله نیست مره هم او کار نیست بینید یه جامعه اگر اینطور بشه که هر کسی بیاد کتاب بخونه حدیث بخونه و تو این کتاب و حدیث دنبال, دنبال مطالبه حقوق خودش باشه نه به جای عدای حقوق دیگران دنبال محاسبه مردم باشه نه دنبال محاسبه خود فضا این جامعه پر از بدی میشه پر از فساد میشه اگر اینا برعکس فکر میکردن من هر زمانی به جلسات میرم عموما جلسات عمومی دارم در شهرستان های مختلف در خراسان عموما یک زنگ میاد سلام علیکم بله یک زن هست، یک خواهر مسلمانه شما رو به خدا از حقوق زنان بگید شما رو به خدا بگید اینقدر ظلم به ما زن ها نکنن شما رو به خدا بگید اخلاق در خانه داشته باشن شما رو به خدا بگید ما فلان چاش خوه. اما تو مطمئنی اون زن خوب برای شوهرت هستی که اینقدر بد او رو جلوه دادی. از او یک آدم منفور و از او آدمی بی آید بد ساختی که هیچ خوبی توش نیست اما تو مطمئنی که زن خوبی برای او بودی خوب بودم بله جنباره. خوب بودم خب پنج داد حقوق شوهر رو بگو حقوقی که شوهر برای شوهر در اسلام معرفی شده تو که مطمئنی زن خوبی برای او بودی او بده پنج داد حقوقش رو بگو نمیدونم تو که حقوق همسرت رو نمیدونی چطور مطمئنی که زن خوبی برای او بودی گاهی وقتا هست که طرف مقابل بد نیست او با کنش بد به کنش بد من نشون داده او اکسل عمل بد به عمل من نشون داده من بد بودم با بدی ترویج بدی در جامعه دادم اسلام به ما میگه که وقتی اداوت آمد وقتی کینه آمد شما چه کار کنید؟ عفت کنید شما اهل ایثار بشید شما اهل اکرام بشید شما اهل مبادت بشید شما خوبی آر رو ببینید و بزرگ کنید فاذا الذي بينك وبينه عداوه كعنه ولي و حميم اسلام میگه از تو دل اختلافات از تو دل خصومت ولی حمیم بسازید با اخلاق خوبتون او بد میکنه شما بد نکن او الگوی رفتاری شما نیست او بد میکنه شما بد نکن یکی مثل او نباش تو خوب باش تو ترویج خوبی در جامعه بده هرکس برای تو خبری میار سری نشنو تا حرف طرف مقابل رو نشنیدی یکی آمد پیش ابن سیرین رحمت الله تلاله گفت فلانی پشتر شما اینطور بد گفته گفت ببین اولا تو خبرچینی و خبرچین فاسق یک دو او پشت سر من گفته یکم حیا و شرم داشته تو روبروی من گفتی این مثل که یکی سنگی میخواد به یکی بزنه پرت میکنه بهش نمیخوره یکی وسط را بلند میکنه همون سنگ را میزنه به کلش چرا زدی؟ او میخواست بزنه نخورد زحمتش رو من کشید سه تا من تحقیق نکنم و از اون نپرسم هیچ واکنشی نشون نمیده. من بعد از او بپرسم این مرد ترسید شما رایی چی شد من این وسط متهم شده فضای جامعه درست میشین تو یکی از بزرگان میگه اگر یکی پیش شما آمد گفت فلانی چشم من را از حدقه در آورده این هم چشم شما دیدی واقعا چشمی تو حدقه نبود کف دستش بود آمد گفت فلانی چشم منو در از حدقه و اینم چشم فوری قضاوت نکن شاید این دوتا چشم اونو در آورده درسته یک چشمش در به تو هم داره نشون میده مظلوم نمایی میکنه اما تا حرف طرف مقابل رو نشنیدی فیضله نکن به او هم اجازه دفاع بده حرف او رو هم بشنو پشت سر برای او فیصله نکن هرکی یک طرفه به قاضی بره چیه او خودش پیروز حاکمه یک طرف آمده حرفش رو تو شنیدی یک چشمش هم در آمده اما شاید اینی که یک چشمش در آمده دو چشمه او رو درآورده. چرا زود واکنش نشون میدیم چرا زود فیصله میکنیم چرا زود هم رو متهم میکنیم قران در این سوره برای ما اون جامعه آرمانی که ما رو آماده میکنه برای تمدن سازی اون جامعه آرمانی که ما رو آماده میکنه برای رسالت جهانی اون جامعه آرمانی که تو شکل نگیره فساد از عالم برداشته نمیشه اول اول ما رو به اون دعوت میده این جامعه با ساخته بشه آهاد و توده این جامعه باید در کنار هم دیگر قرار بگیرن این جامعه باید انقدر جامعه زیبا و قشنگی بشه که آزار از او برداشته بشه حافظ میگه مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست تو شریعت ما یک چیز گناه ها, یک چیز اونم آزاره هر گناه یا آزار به خود خود آزاریه یا آزار دیگرانه هر گناه هر گناه یا خود آزاریه یا دیگر آزاری وگرنه نه من نکردم خلق تا سودی کنم تا که بر بندگان جودی کنم الله اصلا خلق نکرده احکام شریعت رو نیاورده مگر برای این که آزار از جامعه برداشته بشه جامعه نمونه ای از بهشت بشه چقدر جامعه قشنگی در مدینه منوره درست شده خودش کرسنه خودش بیخواه اما نگران خواب دیگرانه سورباک شبها برای تاجد بیدار میشد طوری پاورچین پاورچین خرامان خرامان راه میرفت که مزاحم خواب هیچ کسی نشه. عمول معاملین میگه طوری در رو باز می کرد، بیرون می که صدای این در مورد آزار دیگران نش. اون تحجدی که به دیگران آزار بده تحجد رسول الله نیست حضر شیخ میگه تو اوج نوجوانی بودم یک شبی تهجد خوندم پدرم تهجد منم تهجد. صبح بلند شدم به بابا گفتم بابا بله. تو منو تو دیشب تهجد خوندیم ولی این همه غافل افتاده بودن تا صبح خوابیده بود میگه پدرم گو بابا کاش تو هم تا صبح راحت میخوابیدی صبح بنده های خدا رو به چشم حقارت نگاه نمی کردی و اینها رو غیبت نمی کردی به خدا افضلتر بود این تحجد به چه درد میخوره بابا؟ که وقتی داری دیگران رو به چشم حقارت نگاه می‌کنی، پشت سر دار دیگران داری غیبت می‌کنی، این این به چه درد میخوره این غیبت؟ این این تهجج تو این گریه حساب تو از این تهجج بالاتر از این عشق بالاتر ابلیس کرد اما جرمش فقط یک چیز بود انا خیر و من هر زمان بعد از طاعت عبادت خدمت دین احساس کردی از دیگری برتری بدون مسیر ابلیس رو می‌گیری هر زمان بعد از طاعت عبادت خدمت دین استقبار کردی به جای استغفار بدون مسیر ابلیس رو میری بزرگان ما به ما یاد دادن عبادت طاعت خدمت دین که میکنیم از گشت که بر مولانا الیاس فرمودن چکار کنیم؟ استغفار کنید حق این کار دار نشده من نمایندگی خوبی از اسلام نکردم من صفات دایانه نداشتم تو من کمی و کوتاهی بود من بعد محمد الیاسی برای نامی بودم من بعد محمد یوسفی برای نامی بودم من بعد صفات دائیانه می داشتم من بعد اشک شب می داشتم من بعد خلوت با الله می داشتم تا این عمل اجتماعی من نور داشته باشه لا در اصل بدی من ظلمت تو این پخش نشه در اصل صفات بد من الله بنده های تو از تو دور نشه استغفار توبه استغفار برگردی بیایی این مسیری که اکا اکابر به ما یاد داده اما یک مسیر دیگه هم هست گش کنم از گشت کامدم بگم ما سربازان دین ما کسانی که در مسیر اله کلمت الله و احیاء دین هستیم این غافلا. و این کسایی که محروم از الله این مسیر ابلیس این مسیری نیست که ملان الیاس برای ما ریل گذاری کرده. اگر گشت با غیبت تمام شد، اگر گشت با تحقیر دیگران تمام شد، اگر گشت با حج و قرور تمام شد، این از اون ریلی که اکابر جلوی ما گذاشته بیرون شده. بعد از هر عبادت و هر خدمت دین استغفار، نه استقبار. استکبار مسیر ایبلیس استغفار مسیر انبیاء و اولیاء رسول و نماز می بعد نماز سبار استغفار می کرده. حضرت ابراهیم خانه کعب بنا کرده بعد از بنای خانه کعب ربنا تقبل مننا یکی قبول یکی تقبل اینو از من قبول کن اینو از من تقبل کن تقبل از باب تفعول هست یعنی شایسته قبولیت نیست اما کرم کن از من قبول کن اگر قبول کنی برمن منت کو زاشتی حضرت ابراہیم نے مگا اللہ از من قبول کن میگه از من چی تقبل بفرما ربنا تقبل مننا ایلہ شایستی کی قبولیت نذر اما قبول کن این مسیر درستی حتی بزرگان ما، حضرت مولانا رشید احمد اگنگویی رحمت اللہ دلاله خدمت دین می کردن از مجلسای مولانا رشید احمد اگنگویی مولانا الی اصحاب بلند شد ما وصولی داریم فلان ما منبر ما بلند میشه از توی اون فلان جوان خوب شکر الحمدللہ ما از تعریف و تصنیف ما اصلاح میشه فلانی تو فلان کچه اما از منبر از مجلس اونها، مصاحبت اونها اصلاح می شدن، ساخته شدن مثل مولانا محمد الیاس حا، نه یکی حکیم الامتها نویها نه یکی دحا و صدحا اما خودش خودش چه نگاهی داره؟ اوی اوی, اوی میگه در صحن عمومی دارلوم دیو بن جایی که مسقف هم نبود. اللہ اللہ اینا رو میگی انسان شرمنده میشی اللہ ما چھفا میدیم از دعوت و اصلاح جامع تندل الرحمه انده ذکر صالحین جائی که ذکر صالحین میشه رحمت اللہ میبره بلکہ اللہ تعالی ذکر یاد این صالحین و دوستان و خودش رحمتی بر این دلها بباره این دلها رو به ان حقیقت حاب رسو درس میدادند تو صحنه عمومی و باز دارالوم دیوبند مسقف نبود یک مرتبه باران شدید شروع به باریدن کرد طلبه ها همه میگن دویدن کتاب ها رو برداشتن کتابو خیس نشه تو حجرا حضرت مullah رشید احمد گنگوی نشسته بود شال خودش رو پهن کرد کفش تمام طلبه ها رو داخل شال کرد به پشت خودش زد به سمت حجرا می رفت بلوا ای به بارش اوه همه شاگردها گفتند چقدر بی ادبی چقدر جسارت از استاد اجازه نگرفتیم آمدیم ادبی کردیم جلوتر از استاد آمدیم استاد کفشای ما رو برداشته آورد به حضرت رشید احمد گنگویی گفتن حضرت ما رو ببخش بلوا گریه حضرت فرمود به خدا من در این قدم های شما نجات خودم رو ادلال خیر کفا علیه کسی دلالت بخیر می کنه در اعمال دیگران صحیمه من مخلص نیستم با این کلاسان بلکه مخلص بلند الله به ببرکت عمل او بمن رحوک حضرت اکیم الامت آنوی در رابطه با حضرت امال رشید آمد گنگوی رحمت الله تعالی زیبا میگه میگه مثال ما بر مسند اصلاح و بر مسند ارشاد نشستین و از منبر ما، موعزه ما، بیان ما دعوت ما دیگران اصلاح میشن مثال ما مثل همون دوزد و رحزنی هست که با خودش فکر کرد دوزد و رحزنی بیابروی هست ریسک داره جان به خطره بیام دوزد دین بشم بیام به اسم دین دوزی کنم بیام دکان دین درست کنم این راحت تاره چند تا مورید چاپلوس برای خودش پیدا کرد که برای من تبلیغات کنه. بگید کشف، کرامت، بگید فلان کرد، چلان کرد. جلوی من یک رفتارایی داشته باشه تا دیگران مجبور بشن به سمت من گرایش پیدا کنند. ای چند نفر بازن جند رو قبچین رو آورد اینم شروع به تعریف کش شده کرامت شده اینطور شده؟, شده انطور شده عظیم ور مرید عظیم ور مرید عظیم ور مرید عظیم ور, ور شد اینم شبا میرفت رفت کتابای بزرگان رو می خود احیال علوم غزالی 40 غزالی کتاب ابن قیم کتاب فلان بزرگ فلان بزرگ گفته فلان بزرگ حرف درویشن بدوزدید بسی تا گمن آیت که او خود حس کسی ای, ای حرف بزرگان رو دکان دین کرده بود، حرف بزرگان رو وسیله برای ارتزاق کرده بود، بر مسند بزرگان نشسته بود و مریدها رو از اون حرفهای آتشین دعوت میگفت، مریدهای بیچارین حرفها رو که میشنیدن به برکت اون اصل تو اون تغییر میامد. ینا کم کم آواز میشود، اینا کم کم اصلاح میشود، اینا کم کم ولی الله میشود، اینا کم کم دوست الله میشود. می یک شبی مریدان همه اهل تهجد، همه اهل زهد و تقبا، همه اهل للهیات، همه صاحب نسبت، اینا گفتن بیایم شب از الله بخواهیم که الله تعالی به یک تریگی کشفی کرامتی رایی صادقی خوابی چیزی الله به ما نشون بده مقام استاد چقدر بالاست؟ استاد شیء، ها، دزد. ولی اینها حسن زن دارن اینا صداقت دارن همه شاگرده شب دعا کردن گفتن الله مقام این استاد مرتبه این استاد در ولایت و دوستی تو چقدر به ما نشون بده ما که نمی رسیم به ما نشون بده اینا شب خوابیدن هیچکی نه کشفی نه کرامتی نه صادقی مقام حسن باز هم حسن زن باز هم حسن زن صبح بلند شدن گفتن که الله طوبه الله این مقام قد بلند بوده که حواس این که ما بفهمیم و ببینیم حواس این هم گناه چقدر این مقام بلند بوده و ما حق نداشتیم این مقام رو از آرزو کنیم که به شود بده ما, ما بیادوی کردیم بریم به قدم های استاد بیافتیم شاگرد آمدن پیش استاد آه فقال استاد ما رو بخش استاد ما جسارت استاد ما بیادوی استاد ما قلط اشتباه چی شده؟ تیش شب ماه تو تحجدین تور حوث خامی کردیم ادبی کردیم که مقام تو رو در ولایت ببینیم اما مقامتون قد رفی بود که با هیچ کشفی کرامتی و با هیچ رؤیاء صادقه قابل دیدن نبود خدا می دونه تو در نزد الله چقدر مقام داری این دوست دونجا شروع به گریه کرد شرمنده شد اوی اوی ببرکت آی اخلاص اون شاگرده الله به این هم رحم برکت دعای اونها الله این رحمت توفیق توبه داد صدق والله حقیقت امر که من دوست دارم حرفای قشنگ میزنم اما قشنگ نیستم حرف قشنگ رو دیوارم نوشته شده اما دیوار مقدس نیست چون حرف قشنگ روش نوشته شده من دکاندار دینم من فقط با دین خواستم شما رو برده خودم کنم اما حالا توبه میکنم برای من دعا کنید همه شاگردان شروع به دعا کردن اللهی هر چه بوده هر که بوده بالاخره با منبر این با تریبون این با معزه این ما اصلاح شدیم الله این رو هم ولایت و دوستی بده ببرکت اون شاگردان مخلص الله به اون هم ولایت داد حضرت مفتی رشید احمد صاحب می فرمودند مثال من مثل اگر دیگر اصلاح میشن اگر دیگر الله آشنا ان این خوبی تو صحبت های بزرگان اساتید خوبی من نیست این فضل الله و ستاری و حلم الله عزمن نیست این جامعه رو بلند میکنه جامعه ای که اذللا للمؤمنین هر یکی نسبت به دیگری فروتار هر یکی نسبت به دیگری خودش رو کمتار و هر یکی به خوبیهای های دیگری نگاه میکنن مولانا الیاس رحمت الله تعالی فرمودن اگر نگاه به بدی های هم بکنیم از خوبیهای های هم محروم میشیم هیچ کس کامل نیست کمال فقط مال ذات الله ہے هیچ کس معصوم نیست بی گناه فقط انبیا هستن در مقامی پایین تر از الله و رسول همه ما خطاکاری همه خطاکاری اگر نگاه ما بر خطاهای ما بیفته از خوبی های هم دیگر محروم میشه اگر آمدی به پای زشت تاووس نگاه کردی پر قشنگ او رو نمیتونی ببینی. اگر آمدی به خار ساقه گل نگاه کردی دیگه نمیتونی عطر و بو و قشنگی گل رو ببینی اینا کنار هم دیگران خوبی بدی اگر میخوای از خوبی های هم دیگر استفاده کنیم بدی های هم دیگر رو گنده نکنی عیب جوی نکنی بد گمان به هم نشیم بدون دلیل با هر خبری هم دیگر رو متهم نکنی تحمت نزنی؟ قیبت نکنیم تجسس نکنیم همه این گناهان حضرت استاد مفتی محمد تقی عثمانی می فرمد اساس همه و ریشه همین گناهان چه تجسسه چه قیبته چه بدگمانیه اینایی که اللہ تعالی تو سوری حجرات اینا بیان میکنه ریشه تمام اینا تکبره چرا من تجسس میکنم؟ چرا تجسس میکنم؟ تو حوضی فردی تو حوضه حریم خصوصی افراد چرا من دخالت میکنم؟ به من ربطی نظره. چرا میخوام تتبای اورات کنم؟ چرا میخوام جویی کنم؟ چرا میخوام خطاهای دیگران را بفهمم؟ چون من احساس میکنم از او بهترم و برای بدتر بودن او باید چی داشته باشم؟ دلیل و برای پیدا کردن این دلیل باید چی کنم؟ باید تجسس کنم سرک بکشن یه شایی یه تنزیخشنگی نوشته بود نوشته بود لاک پشت ها دوی سال چار سال بعضی یا عمر میکنن لاک پشت لاک پشت دوی سی ست سال عمر میکنه میدینی چرا؟ چون سرش طلاق خودش هر جا سرک نمیگن اونجا چه خبره؟ اینجا اونجا این چی میگن؟ این چه ای داره؟ خب به من چ منو که آورده برای این کار؟ اساس و شالوده غیبت چرا غیبت میکنین؟ چون از ایوب خود قافلیم کسی که عیبای خود رو بفهمه دنبال ایوب مردم نیست چرا تجسس میکنیم؟ چون دنبال خطای مردمیم تا خوبی خود رو به دیگران معرفی کنیم دیگران رو معیوب جلوه بدیم و عیبهای خودمون رو پوشش بدیم و خودمون برتر بدونیم چرا بدگمان میشیم چون متکبریم و دنبال ایبد دیگران هستیم اساس و شالوده همه این گناهات ها تکبره دوستان تا این مرض مهلک کادر شیخ اسم مولا زکریا کتابی دارم به نام ام الامراض مادر و ریشه همه گناهان تا تکبر در جامعه ما باشه معاشره ما درست نمیشه معامله ما درست نمیشه و تا وقتی معاشره و معامله ما درست نشه ما نمیتونیم رسالت و جایگاه جهانی خودمون رو پیدا کنیم تا وقتی دشمن رو او دو کچه اون طرف تر میبینیم تا وقتی که دشمن رو برادر دینی خودمون میبینیم تا وقتی که دشمن رو یک برادر دینی از خودم میبینم و تمام تلاشم اینه که او رو نابود کنم دیگه به فکر نابود کردن فساد از دنیا و بدی از دنیا دیگه نمیافته تمام توانم دارم اینجا صرف میشه و اون موقع تمام دنیا رو فساد میگیره تمام دنیا رو بدی میگیره و مسئول این فساد و بدی کی بوده؟ بگید من یک حرفه قشنگ مولانا الیاس به ما یاد داد یا الله الله قبر مولانا الیاس رو پر نور کنه با حرکت الهامی خودش فرمو در خرابی یا زمت دیدید بگید چیه چیه میرا قصور ہے میرا قصور, میرا قصور ایرو اول با زبان بگید اول ما میگیم اینو با زبان میگیم اما کم کم کم کم کم کم این تبدیل به یک صفت درونی بشه اول که ما میگیم میرا عراق و کمیه من ہے اما یکی بھی کہ راس میگی کمی تو از ناراض مش این نشانه اینه که مانوس حرف دل ماین نیست حرف لق زبان مصلقلقی زبان ہے ولی همین لغلقی لق زبانم قنیمت ہے کم کم هر چه تمرین به وجود میاد ممارسات به مرور زمان ما به این می رسیم انشاءالله ولی اول که گفتیم حس نکنیم رسیدیم نه نرسیدیم ولی برای ر... خرابیه امت رو بیان نکنیم حضرت مولانا محمد یوسف صاحبی یک زمان میگه به مرکز کراچی آمدن بعد فرمودن که فلان کارکن کجا است فلان عزیز تبلیغی ما کجا است حضرت او جز کارکونه پرانه ما بود کارکونه قدیمی ما بود او جز کسائی بود که اهل قربانی و مجاهده بود او جز کسائی بود که خیلی ها وصولی او هستیم از ولی تا ولی میگه حضرت جلوی دانشگر عظیم به بد نه گو عظیم به بد از شیطان هر از این عظیم به بد میخوای کم یارشو بگی نه ضعفشو بگی نه قبله حضرت الان از کار فصله گرفت الان سس شده حضرت دیگه نو تو چی می اینم یک تربیتی از جانب الله ہے اون با دل دلشکسته دور از این کار، الله بر اون دل شکسته چقدر رحم میکنه و اون آه اورا الله چقدر سبب هدایت میکنه. ما حق نداریم های الله رو به چشم حقارت نگاه کنیم. ما دای باشیم قاضی نباشیم قاضی الله، قاضی الله. جرمها بینی و خشمی ناوری. ای بقرباند کو داوری اللہ چه داور و قاضی خوبی ہے ریا میبینه بروی خودش نمی آره غفلت میبینه بیوفای میبینه گرفت نمی کنی خطا میبینه گناہ میبینه مخلط میده اللہ چه داور خوبی ہے جرمها بینی خشمی ناوری ای بقربانت کو داوری دوستان به خدا تا این رحم و شفقت و این در ما ما نیاد رحمت الله به اون سپاهی به اون لشکری به اون وفت و جماعتی که تو اونها نفرت اداوت بغز رحمت الله انجا فرود نمیاد پیام الله اینه که بجای خبر خبرچین معرکه بشیم شای پراکنی کنیم دلها رو از هم دور کنیم شریعت ما چند جا دروغ رو جواز داده دروغ دروغ یکی از اون جایی که دروغ جایزه کجاست؟ اصلاح فی ما بین الناس ما دروغ نمیگیم به هم نزدیک کنیم. دروغ میگیم که از همند دیگر چکار کنیم؟ ها دور کنیم ما آ یا رسول الله دشمن رو دوست می کرد. و معاشره ما دوست رو داره چکار میکنه؟ دشمن میکنه این مسیر مصطفیٰ نیست این مسیر مصطفیٰ نیست مصطفیٰ عبدالله ابن عبیر و کنار خودش تحمل کرد ما برادر دینیم رو با دو تا خطان کنیم این سیرت مصطفیٰ نیست عزیزان بیائیم حمدی گردد آغوش بکشید رو به خاطر رسول باقر و سلام فرمودند اگر میتونید سوب کنید در حالی که در دل شما هیچ غل و غشی نسبت به مسلمانی نباشه این کار رو بکنید ذالکا ذالکا من سنتی سنت رسول الله فقط ریش نیست سنت رسول الله فقط کلاه نیست سنت رسول الله فقط لباس نیست سنت دل مصطفی اینه که این دل از چی خالی باشه ب؟ از کینه از و از بغض از نفرت خالی باشه این سنت دل مصطفی ما سنت ظاهر مصطفی رو داریم اما سنت دل مصطفی رو هم داریم سنت دل مصطفی دلی مثل دل مصطفی که وحشی رو قاتل عموی خودش رو آف کار فقد بشکف رو بروی من نشی دلی دل من اگر به درد بیاد تو در معرض انتقام الله قرار میگیری. گیری رو بروی من نشی اما تو رو آف کرتا کسی که عموی رو تک تک کرد بود آف کرد. کسی که تو زندگی مکی به او جفا کرده بود به او گفت لا تطریب علیکم اليوم به کسی که عبدالله ابن رئیس المنافقین بود در کنار مصطفی چقدر برای مصطفی سنگ اندازی کرد رداء نبوت داد به خاطر فرزند او گفت این رو در رداء من دفن کنید الله این اخلاق کجاست این امت کجاست مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست من با یکی از الله الله الله... با یکی از ارفاه از خلفای حضرت, عكی... حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تلالی که در خراسانم به جایی رفته من میدیدم ایشون خیلی محتاط و به احوت عمل میکنه به تقوا عمل میکنه به چیزهای دقت میکرد که سایر مردم شاید دقت نکنند اما یک مهمانی باش رفتم لذت بردم من فکر میکردم فقط یک زاهد و یک برداشت سطحی از دین داره اما یک جایی نگاه کردم دیدم تقویار رو درست فهمیده رفتم یک جایی خانه یک فقیری بی مستمندی ولی از سر اخلاص ما رو دعوت کرده بود ما چهار نفر بودیم من دیدم که ایشان از این مرگهای بازاری از اینا نمیخورد اما اونجا خورد من تعجب کردم یکی هم تازه آمد بعضی هستن این کار رو میکنن متاسفانه حسنی خودش مسئله است آمد در گوشه این بزرگ گفت که این مرغا از مرغای بازاری زبه شرعی نشده شما اعتیاد میکنیم مرغ رو خورد بعد اماده بیرون من سال کردم مسجد کونو صادقین با صادقین بودن برای همین که شما درس بگیریم چرا این مرغو خوردید با وجودی که میفهمیدین نازینه است نازی؟ که این یکی فتوا هست یکی تقوا هست ما وقتی به تقوا عمل میکنیم که دل مسلمان نشکنه اگر قرار دل مسلمان بشکنه همون بهتر که به فتوا عمل کن این خانه یک فقیر و بیبزایتی بود با کلی اخلاص رفته بود یک مرغی تهیه کرده بود ما سه اگر من امروز نمیخوردم دل این میشکست اگر خانه ثروتمند بودم من نمیخوردم ولی چون خانه این بود و فتوا هم بود من بر فتوا عمل کردم به تقوا عمل نکردم تا دل مسلمان نشکنه دل مسلمان مقام او از قعبت الله بالاتره به خدا تیشهی به دست بگیری به کعبت الله بزنی گاهی انقد جرم نیست که دل یک مسلمان رو بشکنی اما ما نگاه نمیکنیم چقدر دل داریم میشکنیم چه معاشره ناسالمی چه معاشره پر نفرت و ادابت و بغزی قبل از اینکه رسالت و جایگاه خودمونو بشناسیم اول این جامعه رو درست کنیم بسه ویدان و دین جامعه ما فوزان جامعه ما تا دیدن شعله اختلاف میخواد بلند بشه ورود کنن اصلاح کنن از چیزهایی که حال است از چیزهایی که دعا العمم معرفی شده مرض امت های گذشته معرفی شده از چیزهایی که باعث میشه این جامعه همه ظرفیت ها و قوت ها چیزهای جزئی جزئی به باد بره از اینها پرگیز کری تلها را به هم نزدیک کنی این جامعه رو بس بسازیم تا بتونیم اون تمدن باشکوه اسلامی رو و اون رسالت جهانی رو به همه دنیا نشون سوره حجرات رو که سوره اخلاقه مؤمنین مسل ما مسلمان ما فقط تو فصل رمضان که میشه دو وقت سوالها به علماء زیاد میشه حجمه سوالات یکی در فصل هج حج حجاج یکی در رمضان هی زنگ پشت زنگ هی سال پشت سال تو روزه خیلی سال میکنن تو حج خیلی سال دیگه دارالفتا تعطیله دیگه سوال از علماء تعطیله حالان که من تو معاشرای اسلامی با سوال کنم معاشرای اسلامی یک بخش اهم از دین تعامل با مردم همزیستی با مردم بد چگونه باشه یک سوره کامل مثل حجرات رو الله تعالی برای این نازل کرده بیشتر از این تعالی کلام نمی کنم الله تعالی این جلسه شما رو این محفل ایمانی شما رو به درگاه خودش قبول بکنه وا... الله تعالی این جلسات رو سبب نزول رحمات برکات و نگاه‌های ویژه خودش بکنه. والله تعالی دل هارو به هم نزدیک کنه و به ما توفیق بده آستانه تحمل و صبر خودمون رو بالا ببریم. وسعت دید خودمون، نگاه خودمون رو بزرگتر کنیم. و سایی کنیم انشاءاللہ هم دیر رو به آقوش بکشی معاشره اسلامی رو تو سران نشون بدید تو این منطقه سیستان و بلوچستان معاشره اسلامی رو نشون بدید هرکی اینجا بیاد بوی اسلام رو تو معاشره شما ببینه معاشره اسلام سادگی تکلفات و تشریفات معنا نذاره معاشره اسلام تواضع، ادای حقوق دیگرانه خلاصه یه معاشره اسلامی همین اینا بیاد و بخواه فری این مهم محبت کنیم تمام های دین رفیق باشن فریق نباشن حضرت مولانا ابرار الحق رحمت الله تلالی می فرمات تمام های دین باهم چی باشن رفیق باشن فریق نباشن فریق نباشن مولانا الیاس فرمودن دائی بنو متدئی مت بنو دا ای باش مت ای نباش بدانه داشته باش کی نکرد من کردم کی کوتاهی کرد ما میکنیم ما می فقط میکنیم دیگران نمیکنن فقط شعبه دینی که ما خدمت میکنیم مهمه بقیه نیست بی ادعا کار کنیم من چقدر زیبا بود به یک از شهرستان ها رفتم یک از عزیزان اهل دعوت ماهی با من در تماس بود ورودی شهری نامد دنبال ما با یک حالتی لذت بردم چقدر مخلص، چقدر پرکار، چقدر زیبا، یک جوان، اونجا که رفتم یک حرفی به ما زد. گفت جناب خوش آمدی، با روی گشاده. ما منتظر شما ما هستیم، به خدا ما نمیدونیم، ما پرستارای امتیم، برون کارده دست ما هست. آمبولانس و هوی و هوی و هوی کشیدن تو خیابون رفتن و مریض ها رو جمع کردن کار ما هست آنجو کتو نمیدونم سرم بس کردن ها و اون کارهای اولی دست ما هست اما درمان دست شما هست شما متخصصای اومد اون با توازو میگفت ما فقط اینا رو به شما تحویل میدیم بیایید شما رو به خدا ما جمع میکنیم شما نصیت کنید ما طلب در اینا ایجاد میکنیم شما برای اینا جلسه بگذارید. سبحان الله. چقدر زیبا این نگاه رو به در مقابل و نگاهی که گایبر داره ما کلمی میکنه میگن یک کدتا فکری الان رفته بود جامعه فروقی اونجا نگاه کرد و چپ پرست کرد چی اینجا خدمت دینم میشه کار <تصف> دین میشه اینجا الان تو هر هرکس میاد همونی که کارتون جمع میکنه کنار خیابان موتاذه همون یاد سر روز هفته ای چله ای میشه تبلیغی هر حرفی رو نمیشه ما زیر ذره کنیم حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت الله تعالی علیه من نمیتونم در همه شعب های دین ورود پیدا کنم و در همه شعب دین خدمت کنم ولی برای همه شعب های دین دعا میکنه برای تبلیغی جدا برای مجاهد جدا برای مبلغ جدا برای معلف جدا برای کسایی که در ها حالا من تبلیغی هم گشت میکنم سخنرانم این ور اون ور میرم یکی تو دارالفتا نشسته یک چراغی روشن چند تا کتاب زندگی بدون تنوع فقط همین مشغوله تو از دین سیانت کنه از دین سیانت کنه از دین حفاظت کنه قلعه دین رو از بدعت از خراف پرستی از افراد از کجروی حفظ کنه این درق الی دین و حفظ میکنه اگر این قلعه دین و حفظ نکنه سیانت نکنه اشاعات من هم به درد نمیخوره تبلیغ منم به درد نمیخوره من قدردان این باشم حضرت شیخ غلام الدین ملا زکریا میفرمودند ما برای همه شعب های دین دعا می از الله امید دارم که در قیامت همه درهای بهش و فریاد بزنه چون من خیرخواه همه بودم و برای همه دعا کردم نصرت معنوی کردم و برای همه شاخ های دین خیرخواه بودم برای امید دارم همه درهای بهش بگه زکریا بیا در ما مجاهدین زکریا بیا در ما مصنفینی که قلم به دست داشتیم جاعت بالقلم می کردیم بیا با ما و و زحاد هر در بهش منو صدا کنن چون من خیرخواه همه بودم خیرخواه همه باشی الله به با همه توفیق عمل بده امشاءالله